به یاد تمامی دلاور مردان و شیرزنانی که برای دفاع از دین و کیان ایران عزیز آسمانی شدند روز سوم نویسنده مهدی سجادچی با الهام از یک قصه واقعی بازیگران حامد بهدا. بس من میرم اورشات العرب با والدینم میام پوریا پورسرخ علش خوبه جاش امنه خیالت هم جان باران کوسری برو تو برو رضا میکشنت تو به علی برو برزو ارجمان ها یه روزمات دیگه نمیخواد مرغموشو غلط کرد کارگردان محمد حسین لطیفی تهیه کنندگان علی جلالی حمید آخوندی امیر بهادوری پسری جوان که سیبیر نسبتاً پرپشتی داره داره از زندان آزاد میشه حالا مقابل متصدی امور دفتری زندان جلوی میز ایستاده امیر بهادی ایسی چه روزه که تو زندان بهت بد نگذشته امیر نگاش میکنه. چه بدی کردم؟ پدر و مادر بچه رضایت نمیدم دادگاتم مونده برای دو ماه بعد اینجا امیر دست چپشو جلو میاد اون دسته ده. دست راست انگوشت میزن ماشینی هم که باشون مرحومو زیر کردی فعلا تو پارکینگ میمونه تا بعد سدی میکنم دنگیر بخوا مسایل امیر روی نیز میرزن زر و چاقوی زر امیر میخواد چاقو رو برداره این نه یادگار آقا داره. دوست ندارم دیگه اینجا گفتم که یاد ی امیر از در زندان بیرون میاد. چاغوی یادگار آغاش دستشه. پکانی مشکی رنگ میبینه که از دور میاد و جلوی در زندان اون دست خیابون توقف میکنه. زنی محسن که چادر مشکی سرشه از در سمت شاگرد پیاده میشه و خوشحال به طرف امیر میره. مادرشه. این دورت درد تو چونم بخورم. سلام زندان سخت بود نه دایی جان می‌خورید دایی مس که واسه دایی خیلی سخت بود که واسه ما یه سند بزاره اینو انتظار نداشی که وای حال روزی که داشتی بیام بیارمت بیرون که به خرابشر خون را بندازی دختری چادری کجاست دایی جان حال خوبه ها <تصفح> معلومه حالم خوبه کاکا غلط کردم دنبال کسی سر می‌گردونه این بچه کوپه کی آقا بیاب تو ماشین تو این هوا مریض میشی آم. نه, نه راست میگه بی بریم خونه دیگه ننه نه کجا بیام خونه خدا رو خوش میاد نه نه تو خواهرت اذیت میکنی بی ها بیام خونه که به چی داره دمت بزنه که بی غیرته بیا بشین من کار دارم هی میگه کار دارم میگم ایران نمیاد هی میگی برو سند بیا نه, نه قربونت برم این بنده خدای ای خواستگاری کرا حالا دیگه نمیخواد آسمون که به زمین نرسید از زلیل برده هم رفت مرگ موش خورد غلط کرد بابا حالا که طورش نشده یه روز دیگه نمیخواد مرگ موش خورد کرد تو خودت هم بودی میخواد پسر جوانی سوار بر موتور از راه میرسه کجا تو. آن... آن... آن... امیر از جم جدا میشه و به طرف امیر. پسر موتوری میره پسر پیاده میکنه خودش میشه دایش دوون دوون به طرفش میاد دایی بذار اوضاع احوال خرمشهر آروم بشه با هم دیگه میریم خوبه دایی خود تو حقیره دستش نذار ما یه دقیقه آروم نمیشه تو حواست به ننه باش تو خدا حالا کی آروم دایش میخواست بگیرتش که نتونست و امیر رفت خرمشهر خرمشهر رزمانده جوون که چفیه به سرش بسته و تفنگ دستشه از توپ و تانک اراقیه فرار میکنه. جوون دیگه که موی فرفری داره و عینک دودی زده به کمکش میاد. دو زن اسلحه به دست به اونها کمک میکنه. مردی مو فرفری آرپیجی به دست میاد و اونها رو با خودش میبره توی سنگری که همون نزدیکی. پسر این جوون داره میزنه به در دشمن که برادرش که موهای بلندی هم داره و بزرگتر از اونه یه میگیره با لگدی برش میگردونه و اونها هم میبرن توی سنگر. پسر عینکی هم نزدیک سنگره که با آتیش خودش اونا رو حمایت میکنه که توی سنگر جا بگیرن فرمانده بچه های رزمنده میاد توی سنگر که کمی جلوی مواش خالیه چندین تانک اراقی نزدیک میشن و چندین نیروی پیاده کنار تانک ها هستن نیروهای خودی به طرف اونا تیر میدازن تا مانع پیگه بشون بشن تانک ها نزدیک میشن و بچه ها از پشت سنگر نگاه میکنن که سلیمان سلی بیشتر از رزا کوچو به دست توی خیابون میدود به در آبی خونشون میرسه تنه میزنه و درو باز میکنه سری وارد میشه در به در دنبال خواهرشون گرده نیست سمیره سمیره سمیره سمیره سمیره سمیره سمیره کجای سمیره سمیره سمیره دوی پله های حیوته به طرفش میره دیده رسول کجای؟ بابا چه ها فرستادمو عقب کار خودتو کردی ها؟ خیالتو حد شد دختر لجود اقدر موندی تا رسیدم یالا، تو کی تا رسید. بیا بشین رو کولم. تو فانگو به سمیر میگی. وی رضا خمو با این چیکار کنه؟ این فقط دست خودت باشه. خون همونجا خوندیم. باید یه چیزی بردارم. لازم نکرده. یه چیزی بردارم. به خیالش میره مهمونی خونه آموش. رضا پا میشه و سمیر خودش رو کشون کشون پایین میبره. بازم تانک‌ها و سربازای عراقی پیشروی میکنن. دو تا از سربازا تیراندازی میکنن. اما مورد حسابات گلوله دشمن قرار میگیره و شهید میشه. امیر هم با موتور وارد این مکه میشه زمین می بلند میشه میخواد موتور رو بلند کنه که تیری توی بازوی راستش میخواه موتور رو رها میکنه و میره. رضا از سمیره که چوب زیر بغل دستشه از خونه بیرون میاد تانک ها و نیروهای اراقی از یه طرف خیابونشون نزدیک میشن سمیره به طرف دیگه میره و رضا تیر میندازه ناگهان سمیره میبینه که از طرف دیگه هم نیروهای اراقی دارن دارند میاد رضا هم اونا رو میبینیم محاصله شده راهی ندارن جز برگشت به سمیره اصازنان میره سمیره به سختی خودشو داخل خونه میکشه رضا خودش از لبه دیوار میکشه بالا و اوضاع بیرون رو بررسی میکنه سمیره هم میاد توی حیات خلوت. سمیره: یا چیکار کنی؟ چشم رضا و بعد سمیره به آتو های گوشه دیوار میفته. رضا از طریق صندوقی که کنار دیواره بالا میره و قصد داره به سمیره کمک کنه که بالا بره. چوب دست سمیره رو میگیره. فففزار صندوق. یو بالا. بچو. پجو بری سید زیر پای سمیر لغ میزنه و تعادلش به هم میخواد. خوبی نمیتون بگیر بلنشو نمیتونم برو تو برو رزا میکشنت تو رو به علی برو بزرمت برو خورد شدی؟ تو بابونی رسول چی میشه؟ رزا تو میتونی از دیوار فرار کنی؟ ببین رسول تو رو روح ننا بابا برو برم تا گیره نام مرده بیافتی؟ بگفهمی؟ رزا یه چی بد میگو نه نب. سمیره تفنگ رزا رو از کنار دیوار برمیداره و به شونه رزا تکیه میده بکشه منو باکش. اگه سنداری دو سنداری بکشه به رسیدن رضا بزن رضا شکه شده از این پیشنهاد را لحظی درنگ میکنه تو رو میگیره و بلند میشه چشم تو چشم به خوهرش نگاه میکنه سمیره چشماشو میبنده دارن نزدیک میشن خواهرو برادر به هم نگاه میکنن سمیره تصمیمشو گرفته رضا اما مردده سمیره لوله تفنگو میگیره و به پیشونیش میچسونه سردادز جونم بزن تو خدا بزن رضا خیس عرقه رضا بزن رزا که شدیدن غیرتی شده نمیخواد که خواهرش به دست عراقی ها بیفته اما مردده ولی بالاخره رو به طرف ماشه میبره انگشتش میلرزه بزن اما رضا نمیتونه این کارو بکنه و تفنگو از پیشونی خواهرش جدا میکنه سمیره همونطور درازکش به پای رضا میفته گفتم رضا ماچ میکنه میکنم رضا بزن تمامش رضا رضا بزن رسول بزن رضا نمیتونه رضا بزن تمومش کن رضا رضا نمیتونه رضا که عصبی با کشیده فخرشو سفت میکنی هی من گفتم برو شوشه هی گفتم برو شوشه هی گفتم دست ای رسول شموشه بگیر برو نکردی تو, نمون. خوب خوب تو سمیره فاصله میگیره سمیره امروزه خوش هست برای که تو بازی در رو بردی رو گوش کنم رو گوش کنم اگران دادم درست توی خونه چه حالا میگه بزن با کشم درستی تا رو با کشم درستی با که اقا و اقا میره توی چالهی در باغچه میره و میافته گریان لبه باغچه میشه خیلی عصبی مراحته چشمش به چاله میفته با دستاش خاکهای چاله رو جابجا می کنه یهو چشمش به یه بیلچه پیشاههنگی گوشه حیاط خلبت میفته با طرف کلنگی اون بیلچه شروع به کندن زمین میکنهبلنشی میشه ببین چی دیری بدهخوردن؟ با تو. چی می خی خودم خوددا نمیدون تو گفت تاموکن زمینره خودش رو توی آشپزخونه میرسونه رسونه سر اجاق میره در قبل م رو داره. دو تا سیب زمینی پستوش هست صدای پیشروی تانک‌های دشمن سمیره رو خیلی ترسونده. به گریه میافته رضا همچنان مشغول کندن زمینی سمیره دو تا سیب زمینی رو روی نونایی توی سفره میذاره رضا خستگی ناپذیر زمین میکنه سمیره مقدار کمی آب باقی مونده توی یک ظرف سفالی بزرگو توی کاسه روحی خالی می‌کنه. پیشروی تانکا و نیروهای اراقی ادامه داره. رضا بازم زمین رو گلد می‌کنه. حالا دیگه نیروهای اراقی به خونه همسایه رسیدن نارنجکی توی حیات پرتاب میکنه و وارد خونه میشه سمیره سفره آزوغه‌شون میپیچه و میره توی حیات خلوت پیش رضا رضا ما من چه مخای بکنم سمیره تعادلش به هم میخونه و رضا نگران به کارش ادامه میده رضا رضا بابا رضا بابا یه خاک های پر کده باچی مونده که بتکفت آمکن سمیری میشینه و خاک ها رو جا به جا میکنه شب کشد متعجب سمیری به نگاه میکنه دوری نگاه نکن. توی گودار نخوابی نفستم در نمیاد فهمیدی؟ ها؟ رضا خسته شده بلنش و اسیه به سمیره هنوز تو شوکه نقشه ریاز رضا رزا بلند میشه میره طرف حاصلیر پنجره رضا اگه جستنم چی؟ سمیره که پذیرفه توی گدال که بیشباهت به قبر نیست میخوابه رضا با صورتی عرق کرده و چشمانی گریان به خواهرش نگاه میکنه سفره غذا و کاسه آبو بهش میده خودش خودشم میده به سمیره با حثیره که آورده میخواد روی سمیره رو بپوشونه که برای آخرین بار نگاهی به خواهرش میندازه و هسیرو رو میکشه سمیره شجاعانه پذیرفته اما ترس هم داره سمیره از لای چوبای حسیر آخرین نگاه ها رو به برادرش میکنه حالا میدوی گوشه حید خلوت و اتاشقالا رو برمیداره تا روی قسمتی که سمیره خوابیده بندازه تا همه چیز عادی جل کنه. یه سطل فلزی و جعبه نوشابه صندوق چوبی شکسته میره و الان تنها روزن باقی مونده برای سمیره که نفس بکشه و بیرون رو ببینه رزا پیت نفت و دوتا گلدون شکسته هم اونجا میندازه میشینه و با خواهرش که به نوعی زنده بگور شده حرف میزنه عزیزو هوا داری؟ داری؟ رزا تو رو خدا برام خدا فیزه نمی رضا خاک باغ رو می و پیشونی به خاک میزنه و من ودا خونه. تو ختن نبینم. پررسول هم دکو نرسیدم با سیب زمینی آنها میکشی زنم. حالا بباش. رضا تو رو خدا مرا. نارنجه کی توی حیات خونشون میافته. رزا دو سرباز ایرانی در خونه رو می میدن و وارد حیات میشن و بی معطلی در پنجره خونه را به رک بار می بندد. رضا می و با پریش از دیوار بالا می اراقی ها خودشون رو به حیات پشتی خونه میرسونن و رضا رو برای دیوار میبینن. ایتو! تو لا کاگاپ! رضا متلپایید. روح ورای. رو مالش. فرار کنه. سربازی که این رو گرفته از پله‌ها بالا میره. رضا. وایسا! یکی رگبار عراقی به رضا اصابت نمیکنه و باعث انفجار واندی میشه که رضا از کنارش فرار کرده بود. سمیره که زیر مقدار خاک صدای انفجار شده نگران برادرش میشه. افسر جز اراقی کشوها رو بیرون میاره. بلکه چیزی پیدا کنه. یه چیزایی هم پیدا میکنه. سربازی به میز که آینه شکسته میرسه. کشوها رو در میاره تا بلکه اون هم چیزی پیدا کنه. سربازی ای تلویزیون خونه رو بغل میکنه و میبره. سربازی که کشوها رو میگشت به کاس بوشخاب و ظرفا میرسه. لازم نداره. در نهایت دستگاه پخشا و میره. افسر جزء سیبیل کلوف توی کابینت آشبازخونه رو هم میگرده چیزی نیست چشمش به قابلمه خالی روی گاز میافته. دست میزنه داغه میفهمه که کسی اینجا بوده سمیره توفنگ به دست آماده است از لابلای چوبای حسیر سربازای اراقی رو میبینه یکی اون نزدیکی قدم میزنه یکی سر دیوار با قمقمه آب مینوشه و بقیهش رو روی صورتش میریزه سمیرم خیلی تشنه است سربازا خونه رو حسابی به هم ریختن شیشه ها که شکسته مبل ها به هم ریخته وسایل کومودا و کشوها همه کف خونه پخش و پلاست. یه اراقی وارد خونه میشه فقط پوتیناشون ببینیم به وسط اتاق میرسه تعدادی عکس کف اتاق میبینه دلا میشه و بر میداره افسر ارشد اراقیاست. است. مثل اکثر اراقی سیبیل داره کلاه قرمزی زیر پاگون لباسش گذاشته و کلاه خودی به سر داره کلاه خودشو بر داره و به عکسی خیره میشه خودشو سمیره توی عکس هستند و تعدادی دانش آموز پسر یاد میاره که مدرسه تعطیل شده دانش خوشحال از کلاس خارج میشن سمیره هم که معلم اونهاست از کلاسی خارج میشه از کلاس دیگهی معلم مردی خارج میشه همون افسر عراقی با کتو شلوار و کیفی در دست دست گچیشو فوت میکنه و سمیره حواسش نیست و بین بچه ها حرکت میکنه اینجا مدرسه اراقی های خورم شهره سمیره و بچه ها از در مدرسه بیرون میان معلم مردم با سرایدار مدرسه خدافزی میکنه و بیرون میان سمیره میسته او وقت بس یعنی چی شد چرا ما رو برسی گفت اومدگر حرف بزن من سریع پسر بچه دویدن به سمیره میخوره جته جفتک پسر بچه که از فواد خورده سرشو میگیره و آروم چته بچه افسر اراقی یا همون فؤاد کیف پولی زنونه رو روی زمین پیدا میکنه. کیف سمیره هست. بازش میکنه. عکس رضا و پدر و مادر مرحوم سمیره توی کیفه. بازم به یاد میاره. روزی که رزا باهاش حرف میزد. زد. صحبت با ما صحبت می کردین. نبا خودش. هیچ کنه نره با خواهره مصحبت عاشقی بکنه. دبینو. ای دختر صاب داره یا نداره؟ محترم. داره یا نداره؟ داره. باشه من خواستم بحث کنی. آ نه اطلبی اینا. ها؟ نفهمیدم. فارسی حرف بزن ببینم چه میگی. تو که فهمیدی. آ. آدم. نمیدونی خودم خاص گردش میکردی فؤاد کیف پولو می‌بنده و بو میکنه و آروم وارد حیات خلوت میشه. چشمش به باغچه و وسایل کهنه توی باغچه میافته. سمیره توی گودال سکس کش گرفته. جلوی دهن خودشو میگیره. فعاد درنگی میکنه و بر میگرده توی خونه متوجه نشده سکسکه سمیره ادامه داره فعاد به دیوارای آجوری حیات خونه میرسه خاطرش باز زنده میشه در حیاتو باز میکنه و خودشو پشت در میبینه که با کت و شلوار هدیه در دست پشت در ایستاده فواد از در خونه بیرون میاد و به طرف جیپ ارتشی میره که همکارش پشت فرمان نشسته راید. راید کجاست در این میاد خوربم راید همون ابسر جوز با یه زبط صوت کوچیک از راه میرسه اینکه دودی هم به چشم داری تو جماعت... دو دوستاتون خونه رو غارت کردین بله ما قارت کردیم چیزی هم گیره تو اومد فقط همین ها اینک و زبد سود فعاد کشیدهی به راعد میزنه و بلا فاصله صورتشو بر میگردنه من گروه با افتا بر میگردم میخوام همه چیز به این خونه برگرده اولش. نه. بله نه نعم سید فعاد. بله آقای فعاد مثل ما چان. بله قربان. عین اولش فعاد ضبط صوت و عینک رو از رائد میگیره و سوار ماشین میشه سکسکه سمیره تموم شده از بین چوبای حسیر نگاهی میکنه یه سرباز اراغی رو میبینه اون میره و یه سرباز دیگه میاد درد پاش بیشتر شده اما حتی نمیتونه ناله کنه فقط به خودش میپیچه و یادش میاد روزیو که سالم بود و توی بازار بود همه چیز عادیه سمیره زنبیل به دست با دمپایی توی بازار راه میره زنی دستفروشی میکنه پیرمردی سبزی میفروشه زندگی در جریانه نوجوانی سبزی و گوجه میفروشه زنی مسن لباس میفروشه که سمیره مقابل اون نیسته سوالی ازش میکنه از اون طرفه سمیره به جهتی که زن گفته نگاه میکنه فعاد رو می, می بینه که با لباس عربی مضطرب از بین جمعیت رد میشه سمیره رو نمی بینه سمیره دنبالش میره پسر بچه یه کیف مشکی رو دوششه تا سمیره برمیگرده و همونجا جا بود که پای سمیره آسیب دید. رزا که فرار کرده بود از زیر آب سر بیرون میاره و عصبی فریاد میکنه مغر ایرانیا. ها نوجوونی سوار وارد مغر میشه مالک و مجید با هم جر و بحث میکنن مالک مجید حل میده و با کیف میزنه توی سینش سلیمان و مهدی و مرتزا میان و اونا را جمع اوه رفیق من داشتم کار خنده هر خنده بعد سلام سلیمان کمی دور آقا چته چه چیه چه‌کار گته؟ مولا منو خونه. فگونه به چاره می‌خندن واس چیه؟ واس اینکه این باختو نسته باشن، قیافش نگاه کن باختو نسته. آقا داره چیکار دارن؟ به بچه‌ی ما چیکار داره؟ شمجم. اگه اینا گریبونو مش کس می‌دونه این چیه؟ ها فهمیدم جرس سر چیه. آقا ای بده ما ما آخر جنگت. میدم بده ما میگم بده ما گر می‌شدی ما. می‌فهمی کل کلت می‌نرزه؟ من میگم زشت. آقا رسول تو کجا می‌ری؟ رسول جان. قرض اخو مرتضیخه. مهدی رسول. که مالکو در حضور مرتزا آروم میکرد سمت رسول برادر رضا. مهدی که مالکو در حضور مرتزا آروم میکرد بفهمم خواهر برادرم کجا شرا؟ اینجا همه نگران خواهر برادر توان تو کاری ها دستت برنمی آن اگه من میاد خب میکفتم برو <تصفح> مان دیگه تاقه ندارم بذار برایم مهدی که ترسو نیخارد مهدی که ماندارم بایدارم این رسول ک رفیق جان هیچ جنم تو چته وارد قرارگاه شد میدونی تو چشمان نگا نمونن تو علام رفت و ورف بزنی ها دیدم رسولجان جان نگاه کن تو بیا یزعلی چی بخور من خودم قول میدم ببرم پیش رزتون بنده خدا رزتون شای یا عیتنا شاع اوترا شاعت اه نه نه نا نا رسول چته قرارگاه عادی رو سرق ها رضا تو نمیدونی مدل نگونن میشه جانا یالا تمشیزون اینجا سیو سلامت اولت مندرس خوبیی گفتم میره بجان خب چطوری لوپکو چا دارید رضا سمیرک جان علش خوبه جاش امنه خیالتون رضا جان فاصله میگیره و رسول نگران دنبالش میره رضا تو راه بره نهنگ سامبوخور سمیرک جان کسی سم میخوره که بخواد دروغ بگه می‌بینی اصلاً چه دلداری داره دورو گم ها تو داره ما دروغ میگی ما صحبت گفتم با وزیرت دور صاحب کان گفتم یا گفتم تو بیار پایین بر کم نکن رضا میره و رسول دنبالش تو داره ما دروغ میگی نه نه بچه میره اینجا یه چیزی هوش ندارم جمال محمد میرسه میرسه که با مالک صحبت میکرد میخواد بره که مرتضی جلوی خلاص سمیره نهاده موبره پر رفت تا اله هم مونده بود صدفان اما نولایی قاسم کجان اونا هم جدا شدن رفتن مسجامه مطمئنی ها دلوقم چیه عجید ها اصلهش کن به سربچهی با کلا خود و کیسهی در دست پیش آقا مرتزا میاد سلام آقا مرتزان. سلام آقا بهنام اینا چیه؟ قلمتاد راقیا مرد. خب چی هست؟ فقط کوف کردن ولی نتیبش نشد. خب عمر چه خبر بود؟ قوطیای کنسرو. در خرابه های خانه رضا و سمیره امیر که بازوی راستش مجروح شده نشسته و سیگار میکشه. سیگارش به نیمه رسیده. نگران به اطراف نگاه میکنه. نگاهی به زخمش میکنه. سیگارش رو از لب بر میداره نگاهی به سیگار میکنه. و حالا آتیش سیگار رو روی زخم دستش میذاره و بی درد میکشه صدای اراقیان اونو به خودش بیاره فعاد به همراه راید, راید و یه سرباز دیگه اومدن اونجا فعاد اون دو رو بیرون نگه میداره و خودش وارد خونه میشه به فرش خونه میرسه به احترام عشق سابقش پوتیناشو درمیاره میاره با چرا قوه وارد خونه میشه چشمش به مبلای یه وری خونه نفته روز خواستگاری رو یادش میاد که روی همون مب نشسته بود و با رزا حرف نزد آقا فعاد فعاد ای نانو بابت موردن اله الحمدلله وقت توی مملکت شما رسمه جوری برن خستگاری بی نانو بابا فعاد به علامت منفی سر تکن بیده فوات توی خونه مقابل آینه شکسته میستوارت میرسه چرا قوه میندازه و تصویر چنتیکی خودشو توی آینه شکسته میبینه به دستشویی میرسه خودشو توی آینه اونجا نگاه میکنه چشمش به وسایل ریش تراشی میفته با فرچه رو توی کاسه کوچیک به هم میزنه به صورتش میماله و حالا با تیغ صورتشو میتراشه اصلاح صورت تمام شده توی حیات خلوت میاد انگار دلش میگه یه خبرایی هست صورتش خشک میکنه که یهو چشمش به چوب زیر وقل سمیره میفته که کنار باغچه افتاده میشینه برش میداره و باز یاد همون روز خواستگاری میفته بسیار خوب شما تشریفتو میبری و بره عربند ننه و باباتو میاری بعد با هم دیگه حرف میزنیم شما خودت والدینت نیست اونم هم مردن ولی الان ما هم ننشم هم بواش جیل. جیل. بس من میرم اوبر شط العرب با والدینتم میخواد بره که سمیره با سینی چایی سلام علیکم چایی بفرما فواد یه استکان چای برمیزه حالا فواد سیگارشو تموم کرده بلند بشه شود دست سمیره رو تکیه میده به دیوار و وارد خونه میشه سمیره داخل گدال متوجه حضور فؤاد شده زیر لب دعا میکنه قرارگاه ایرانی پسر بچه‌ای با آقا مرتزا صحبت میکنه زنا هم توی قرارگاه هستند. یکی از عناص راق سلیمان میره که مسئول تقسیم قضا است. اون دیگه سلیمون. امرالله قاسم قضا نخوردن. اون تصدفانه مال اللهی سلیمون تمام به چا فامیل خودم بزر کردو. وندسی کن چه با چند چی با ظفیته با چه پولار ترونه. باغ و بیلا و خونه و ماشین بز تو ترونه ول کرده اومده داره میچن که درست اینمو. بس تو؟ نه این تو. بس ما؟ موی بعد چه دارم؟ کی سلایمون زده 20 تومور دی 20 تا هم کوشت اما سلیمو سم بده تو چی میگی در قابلمه ای که روی آتیشه رو برد با ملاقه یه تومور برمی داره و میذاره روی نونی که دست رسوله سم کوکا من بده آقا آقا این قصر سرم ناله ای میگم هر کسی باید ورعه خودش بخوره برش بکوت بیا خدانه خورده حالا راستیه خب بیا یار سامرزاد سلیمون این 100000 رو بده ما بهش بده با دوست تا رسول میخواد از پلیه بالا بره که با مالکو مهدی برخورد میکنه مهدی بچهی که بغل مالکه رو میده آمانه چه کلی بوده نکنه ببینی ها بخشی خود بگی دوتو بزن پشتش یا آراخ میزنه یا یک کار دیگه میکنه باید راحت میشه نه گریه میکنه نه مشکلی بره نه نامزد زد دارم با تو تو زن طلاق داره من نمکن بچه یعنی چی؟ بخاطی که خب بچه دار ن آخه من یه دو ساله دارم این خوبه؟ ما مالک بچه رو از مهدی میگیر و پشتش میزنه رضا رسول غذای رزا رو آورده رضا گوشه اینش رو گریه میکنه اینجایی؟ برای شام بردم نمیخورم گریه میکنه؟ نخیل. په چرا چشت خیسته؟ معلمت نگفتم بلکو می نکم؟ ها؟ برده دقارت خب باشه چرا داد میزنی؟ رسول ناراحت میره رضا بلند میشه و رسول ها بیا ایجا. رسول بر میگن رزا ای به رسول میده چیه؟ سمیلی تا دیره برای تو کوف کو سیرشی کم کسری هم دشتی با خودم بگو رضا خیلی تشنمیم یه ابکار مالته با گازایل با گازایله رسول میره دم در به پسر بچه و آقا مرتضی برمیخوره بهنا اگه سین نشودی بیاین با هم بخوریم بهنام و رسول از آسایشگاه خارج میشه سمیره توی گودال حسابی گرس نشده از لای سفره یه تیکه نون و یه سیب زمینی این داره میخوره یه لقمه نون یه گاز سیب زمینی نصف شب مرتضی با موفقش نشستن و نقشه ای رو طراحی میکنه اول وقت تو سر این جاده پیش برن منم با 20 تا از بچه‌ها فردا صبح این کارو انجام میدم خوبه خیلی خوبه فقط باید حواسمونو خیلی جمع کنیم چون اونجوری که بهنام محمدی میگفت عراقی ها امشب تو این خیابون چند تا تانک مستقر کرده. تو این خیابون من که تانک نمیبینم مشتاق دست وارد رضا آروم از بین بچه‌ها که خوابن رد میشه از کنار مجید که با عینک دودیش خوابیده رد میشه به رسول میرسه که خوابه کنارش میشینه دستی به صورت برادرش میزنه نگاهی به بقیه میندازه که در دو ردیف و پشت سر هم همه خوابه سلیمان هم که مثل همیشه چفیه به سر بسته خوابه و توفنگش کنارشه رزا تصمیم میگیره که توفنگ اونو برداره رضا توفنگ به دست نزدیک خونشون اومده پشت جیپی پراه میگیره حالا میدوید روی کوچه شون پشت ماشین سوخته قایم میشه تا جیپ اراقی رد بشه و بره بعد از رفتن اون جیپ بلند میشه حالا پریده توی حیات خونشون آروم به طرف حیات خلوت میره امیر که برای انتقام اومده از پشت درخت آروم بیرون میاد چاقوی زامندارش رو آماده میکنه و از پشت به رضا حمله میکنه میگیردش و رضا رو میکوبه به سینه دیوار و با چاقو تهدیدش میکنه چی بکنی امیر؟ پمونه فک نمی‌چته اینجا جواب بینی ها؟ رضا به وقتش دور تا دورمون pore علاقیه. رضا. علی میکشمت رضا به وقتش میکوشمت. گفتم بس اونم واخته. رضا لگدی به امیر میزنه و میفته. میخواد بره که امیر تا جلوی پای رضا میگیره رضا هم میافته و تیری از توفنگش در میره رضا خودش رو روی امیر میندازه که هنوز چاقو دستشه هستش. اراقی‌ها صدا رو شنیدن. منور میزنه. آیا سانادر روشن میشه و چند اراقی از توی سنگری که درست کردن به رضا و امیر تیراندازی میکنه بهشون نمیشه رضا تفنگو برمی داره و فرار میکنه امیرم دنبالش سلیمان که توی قرارگاه با صدای تیر و تفنگ از خواب میپره آسمون رو نورانی میبینه و یهو متوجه نبود تفنگش میشه نگران بلند میشه بقیه نیروها بیدار شدن تفنگو مالک بچه به بغل در کنار مهندس مهدی و مجید که عینک به چشم شه سولیمانو نگاه میکنه رضا توی کوچه راهی که اومده و امیرم پشت سرشه فعاد که هنوز توی خونه است بیرون میاد از پله های توی حیات خلبت بالا میره و به اطراف نگاه میکنه علت تیراندازی رو نمیدونه موافق مرتزا روی قرارگاه با بیسیم صحبت میکنه ولی جان آراز. هاست اینجا جان اوراست. نگران بچه‌هاست گفتم اینجا. ماشه چش. بهش میگم تاش aste بود. یکی از ها رو میخواد به زور بگیره که مهندس می‌بینه. که قنداق به این منده خدا بلش ما کاری ندارم این مال ما حسیا نیستم ما توفنگم نی. مالش. گانچر ببر تو تا سر مون خرده زابراناشو بخوامون. تو ناراحت نی. تمام مربوط نیست تو که مربوطه خود ببرش دیگه بچمون مرد اشیا نمیترزه نراتم رضا خسته و تفنگ به دست وارد قرارگاه میشه سلیمان بیا اینجا دست آقا رضا است چکسی شما چرا بدین ببینیم سلیمان عصبی به طرف رضا میگه ببینیم ببین موام هم قدت هم‌بذت هم همسنت هم این هم. همه آدم اینجا نشسته تفنگو میذنی ای شوخ شوخی با ما همیش شوخی لیمون حالا که اتفاقی نیفتاده عزیزم اینم اصلا بی میگه برو دیگه, دیگه. ویل کماندر دست دیشو حالا نمیدونم با چه دفاع کنم تو نف رئیس چین ابا اینجا فقط همه بلالا قوز میاد به آقا مرتضى میگه و میره رضا میخواد بره ازلا. که به مجید عراقیا برامون چراغونی کنن خب به منم میگاپتی میشینم منم سیاه‌ناکونی بگید کجا بودی رفته بودم یه تاب بخونم یادم اخونیه چه جان آدم اصلا خواستم میره خوابم دروغ میگی رضا بریچه سفتوان امان و لایه قاسم مسجد جامعه نیست خود جواب بگو شبانه اونایی ما بعد بدهون نه ولی میتونی راستش بگی که الان کجا بودی صد بار بهت گفتم اخه اون چیه که برای تو اینقدر مهمه که نصف شب یه تو گرفتی که دستت زدی وسط ها ما به عنوان رفیق نباید بدونی رضا بی جواب میخواد بره رسول میگه میگیرتش جونه جون که ما تو خونه خود چیزه نداریم که بخبر دنبالش مگه این که حالش خرابه از جای رد میشه که بره توی آسایشگاه مم. به ماله که بچه بغلشه برمیخواه نیسته صورتش رو توی دستاش میگیره و بالاخره تصمیم میگیره حرف بزنه برای همه چی بگم با... چی بگم چی این بچه رست میگه همه تو بودونی نه خواستم بفهمی، اما نه یا خواستم دوم خونمون کشتم نه خواستم جار بزنو ما نمیقیدت مطبور شدم خوارمون زنده تو حیات خونمون قایمش کنم. چه کردم ما چه میکرده ما با بای حلیلش خواستمش خوداتون جایی ما بودی چی کار میکردیم نتونستو الان هم رفتم شبوله بیارم همه تحت تاثیر قرار گرفتن و ناراحت شدند. رضا میشینه و گریه میکنه جیپ اراقی جلوی مقر خودشون نیسته فعاد هم توی جیپه حالا توی ساختمون با رائد حرف میزنه گفتی دو نفر بودن؟ بله خودم فکر میکنم دنبال چیزی میگردن یعنی همون خونه که توش بوده چرا این نمیدونم محط. وقتی داخل خونه شدم من بیدم روی دیوار رو داره بیره. به خونه, خونه, خونه نگاه نکنه در زمان جوون بود بیا, بیا. بیا. فؤاد توی اتاقش کشوی میزشو باز میکنه و کیف پول سمیره رو در میاره و اکسای توشو به نشون نشونه خودشه رائد میخواد کیفو بگیره فعاد نمیذاره رائد به اکسا نگاه میکنه دقیقه خدا خداش که اترجلال تو و چی بر میگردین به اون خونه و بیرون نمیای تا من بگم بله قربان تمام لحظه بعد رائد بر میگم راست قربان مردایی هم میکنه چطور لوش وقتی وارد خونه شدم و رفتم تو آشپزخونه. یه قابلمه یه داغ اونجا جدر جدر. جوری که انگشتام و سزوند میگه و میری بیشتر سمیره از توی کاسه‌ای که با خودش توی گودال داره مقداری آب برمیداره و چند قطرهی توی دهانش میریزه دستشو دور دهانش میکشه که آب کمتری مصرف بشه توی قرارگاه ایرانیا همه خوابن آقا مرتزا مهندس مهدی مجید با عینک دودیش رسول رضا هم در گوشه خوابه امیر به اونجا آمده و حالا با قیز به رضا نگاه میکنه نگاهی به دورو بر میکنه چاقوی زامندارشو در میاره. خون تا کف دستش اومده مرتزا که کمی جابجا میشه و گردنشو جابجا جا میکنه یهو امیر رو میبینه که با چاقو بالای سر رضا استاده از پشت بهش حمله میکنه. مچ دستش رو میگیره و میکوبدش زمین. از سر و صدای ایجاد شده بقیه هم بیدار میشن. ول کن دستا رو چی کن دستا ولش کن. همین چاقوش مینده. چی میخوام؟ نمیبینید دستم زخمه؟ ولش کنید. آشنا. مرتضی از روی امیر پا میشه امیرم بلند میشه و یهو به رضا حمله میکنه که مالک و مهدی میگیرنش و دورش میکنن این شرف نامه به علی میکشم میکشم آقا این دستم زخمه میفهمی میبینی زخمه باییسه دیگه باییسه دیگه به دینه تو بفهمم میخوای بزنیم اینه پشت بپکنم روشی چه مجید آخه رزی که ما چیکالری ها یکی واسه ما قدقد نکن ما فقط باو با کاکا نامرد کار تو خیلی معدی میخاتی تو خواب بزنی اینو میگی بچه بیدار بابا اش نامرد بود و ما میزد و آقا مجرج پشت این رفیقات بیا چنار. او چارقد دستارو بعدا بیا دم دم تا بگم که مرسیه نامرد چیه زبون درازی نکن زبونت میبرم آقا چی شده چی شده عزیز... میگه میگه چی شده بگو برای رفیقات رفیقا خب بگو چی شده ها عزیز من چیکار کنم بچه بیدار شد دیگه نمیکنه با گفتگو بابا این نمیزنم اصلا نمی آقا یثبه بار اخونم با خواهر ما رو آ آ آ, آ به هم زده. و چی راست راست جلو ما راه میره میگه چی نمیخادش؟ خب چیه؟ خب خو نمیخاتش. رسول میکوشه. آ یثبه بابا این میکوشمش. نمیخوامش؟ ها؟ ما گفتم نمیخوامش. اینو بابام رفتنه. خدایا خو خواهر علیر گذاشتو دست مو این رسول. صد بار به گفتم صبر سب کن. صبر کنو؟ چقدر صبر کنم ها؟ به بی شرافتگی جی رسیده بودم که با مارگمش خودشو کشته بود. رضا از شنیدن خبر فکوشی ریحان حسابی انقلب شد. آ چیه؟ ریحان مهمه؟ نه مهمه مهمه؟ بذار با کشمشی را صحیح. بابا بذار اینو نمیدار بابا کارش کنم بابا بابا این را بگیرونیم عشق کنم اخی بیا دیگه بابا میام خدا میام بابا بیا بگیر بشین اونجا بیا بشت سمچی ها بگو میخوایی انتقام بگیریم از سر و سر کی؟ تازه سلیمون از خواب بگیرونیم میخوایی بخوا خون آدمو سوزمه شووال نمره حسابا دفاع کنی چی دیان چره دیو آقا چره خلاصله بودی دیگه این نخون این همین نیروهای جدیدیه که یه ما پیشای رئیس جمهور قول دادن فیلورنیا ما الان وقت شوخی نیست خواهش می امیر سیگاری بلب میذاره و میخواد روشن کنه اون آدم مجبور شده خواهرشو زنده, زنده زنده زیر خاک قایم کنه و بیاد بیرون او اون خونن تو ماجرای خیاست ما نمیدونیم چی اتفاقی برای خواهرش افتاده مرده یا زنده‌ست حالا هر کاری که دوست داری بکن امیر فنده کو خاموش میکنه تازه فهمیدی که قضیه چیه یا مثلا. اونم ظاهرن دل بسته سمیره است. دم صوبه آقا مرتزا نمازش رو داره به پایان میبره که مهندس مهدی که اینک به چشم داره پیشش میاد آقا مرتزا که میریم بزر سبیده بزنه الان زوده قبول حق صبح شده حیات خلبت خونه رائد روی تخت میشینه و سربازی کتری سیاه دود گرفته رو از روی آتیشی که توی باخچه درست کردن بر و به طرف تخت میره قوطی خالی کنسرو بر میداره و پرت میکنه میفته طرف گودر میدونی بعد چای چی میچسبه و زمیره صدای اونا رو میشنبه خیلی ترسیده و بیاد میاره زمانی که رضا اونو توی گودار گذاره فقط یه تیر داخلشه. خدایی نکرده خودت میدونی سمیر دست به توفنگ میبره آماده است برای خلاصی از دست نوشمن مهدی توفنگ به دست داره و امیر پشت سرشه از جای رد میشن که روی دیوار نوشته جنال نبقا جعنال نبقا بله بله ایخو یعنی چیه عراقی همچین شهره بشته یه برامت میگم برام بگو پارسی یعنی که بمارن. به جمع بچه ها می پیوندم همشون اومدن برای بردن سمیره مجید که عینک دودی داره در کنار رضاس از پشت سنگری هستن اوزار رو بررسی میکنن امیر پیش مه است آقا ت کابر خی اصلا یه چیزی باقع نمیدی دست ما خاالیه برنای رسیدی بر می گیرم حالا چاقو بده تو می بری چاقو قایکار خ بت اقا مرتضا از توی جیبه چاقوی امیر رو بهش میده یادبر اغا ما ماجين یهو چشمش به رسول میفته که اونم اومده ظاهرا بی اجازه فزز سی چقد ازت حساب میبره آقا رو رسول گوشش بهونه میات کار دارم خود چرا این همه تین گیتو اغا توو چرا میکنی نارنجک کردم تو تو بدی نهی بذارم تو سرت اومو خم بیام لازم نکرد بس که هارم میخواستی چرا میزنی خوا؟ چرا میزنی؟ چرا میزنی؟ چه چه چرا دا چیکار می‌کنی؟ چرا اون الی می‌زنیش؟ اون کاشمتو مردی. جا جا به قدرت موقعی دیگه هم گفتی. بدون ناجی. رسول ناراحت از ضربه‌ای که خورده از سنگر خارج میشه و توی خرابه ای میره. آقا مرتضی بچه ها رو راهنمایی میکنه که از سنگر بیرون بیان و به طرفی برن. در همین لحظه جیپ عراقی با سه سرنشین از راه می رسه. اونا رو دیدن شروع به تیراندازی میکنن یکی از نیروهای خودی تیر میخوره به اراقی ها اضافه میشه مرتزا با رگبار پوششی ایجاد میکنه که بچه ها برن امیر دنبال مرتزا میدوه تفنگ همراه شهیدشون رو برمیداره و دنبال بقیه میدوه اراقی ها دست بردار نیستن رضا و مهدی و مجید و سلیمان روی زمین دراز میکشن و به طرف اونا تیرندازی میکنن م دوتا از اراقی تیر می‌خورن، چند تاشون فرار میکنن مالکی ها میپره وسط خیابون و جیپ اراقی ها رو با آر پی جی میفرسه رو هوا حالا همه میدونن طرف خونه رسول که بازم از توی خونه خرابه نارنجک آورده از اونجا بیرون میاد. بچه ها میبیننش رسول تاک اراقی پشت سر رسول میاد. رسول توفنگ از روی زمین بر میداره و طرف اراقی شلیک میکنه سورا غباغ میدوه تانک ها دو تا میشن و تیربارچی دشمن از روی تانک رسول رو میزنه رضا میخواد طرف رسول بره اما بچها میگیرنش و گوشه خیابون روی زمین میندازنش مهدی و سلیمان سفت گرفتنش رضا تقلا میکنه رسول که روی زمین افتاده داره جون میده تانک ها نزدیکتر میشن مجید امیر رو هم ساکت میکنه و میبردش عقب رضا میخواد به کمک برادرش بره نمیذارن تانکها باز نزدیک میشن رسول با صورت و بدن خونی افتاده سعی میکنه کشان کشان خودش رو به کناری بکشه. تانک دشمن از روی پای دوتا تا رزمنده شهید رد میشه و رو له میکنه. رسول تانک رو میبینه که حسابی نزدیک شده. مالک وسط خیابون میاد و تانکو با آر میزنه. تانک متوقف میشه. مالک گلوله دیگه جاسازی میکنه. تانک دیگه همچنان پیشروی میکنه و تیربارچی بالای اون به طرف مالک شلیک میکنه. یه فانک دیگه هم به اونها اضافه میشه. آقا مرتضی روی زمین دلتی میزنه و تیربار جی یکی از تانکارا میزنه. مجید که تک تیراندازی میاد وسط خیابون زانو میزنه. میخواد نشونه بگیره. اینه که دودو شرویی پیشونش میزنه. نشونه میگیره و تیرش درست میخوره وسط پیشونی راننده تانک و تانک مقابل رسول منحرف میشه و میشه. دام سلیمان درو باز میکنه بدن بی جان رسول خونی توی بغل رزاست که وارد میشه بقیه هم پشت سرشن از راه روی رد میشن و به دکتر برسن ای خواهی تو سرم شد دو دو دو دو های دکتان رزا رسول و زمین میذاره سر بعد بدجوری خوبه رزا زبونش بعد دو ای جان ای جان خوب میشه جنوام رسول. رسول رسول اینو میگه و با چشم باز به با اون دنیا میره ای رسول رضا دست روی نبز کردن رسول میذاره و مطمئن میشه ده ده ده. سلیمان و مالک عشق می‌ریزند. مهدی هم سر بر تو فنگش گذاشته مجیدم گریه میکنه و مرتزانه ناراحت به با اون نگاه میکنه شب شده توی قرارگاه رعوف که ظاهرا پسری دست و پا چلفتیه و خیلی تر و تمیز نیست نشسته و میخونه مجید میخواد به طرف رضا بره که روی کاپوت جیپی نشست و خلبت کرده ولی مهدی مانهش بشه اگر یار نینام سر رایت شگی نومی داخلیت نی وحدی ادوبان علفرگاک وی اوه داره پای همون جیپ نشسته و تفنگ به دست اشک میریزه مهدی و مجید به بقیه میپوندن حالا همشون خفه بهنام حسابی هسابی عشق میزد. سلیمان که بین مرتزا و مجید نشسته به حرف میاد. نگفتم. تو فهمیدیم شعه رسول نیست خود و تا نسون دیی <تصفيق> آدم هموالی بکنی هموالی مردم بکن یارم یارم مردم کچکمون رفت بخون چه باش تو ازوی بخونی بابا که دور از غم برعوف که پرندهی روی شونش نشسته عشق میریزه و میخون دیارد سمیره دیارد توی گودال تقریبا بیجون شده به گریه میافته اما خودشو کنترل میکنه که گریهش صدا نداشته باشه مالک با بچه اساخته مون برو میاد و وارد محابهت قرارگاه میشه. خوشکلم گری نکن تا بابا برگرده خوشکلم نی. مرد با شیر افرین نه نه حسن نه نه حسن نزدیک نردم میاد و بچه رو از ماشین میگیره. مهدام بابا مهدام دست دارد نکن. زیزم کشتنم دست در نکنه خیلی مهربان بشه باشین سود با. براش میگیرم انشالله نه داغ نمینم برا با من خودم فصربسه پنجه اصل مرتضو رو آماده میکنه امیر آماده ای میشه نشونه میگیره مالک به کمک مجید مجد گلولهای آرپیجی رو بر میداره و توی کیسه میذاره مهندس هم گلولهای توی خشاب جام میذنه و اینکه رو به چشم میذاره صلیمان گریان بند تو رو سفت میکنه. مجید تکتیرانداز دوربین توفنگش رو چک میکنه حالا شش نفری برای نجات سمیره از توی قرارگاه راه میافتن رعوف هم دولا دولا خودش رو به اونا میرسونه میگم ما به دردتون نمیخورم با شنیدن صدای انفجار هشت شش نفر میخوابن روی زمین قرارگاه به هم میریزه رعوف ترسیده جیپ بچه ها منفجر میشه هر کسی یه طرفی میدوه مخصوصا زناب ساختمون مورد اصابت خونپاره قرار میگیره مالک از جاش بلند میشه و آر به دوش میدوه بقیه هم بلند میشن انفجارها شدیدتر میشه اونا اونارو ترغیب به دویدن میکنه چند نفری شهید شدن چند نفری هم زخمی اونقدر دود و آتیش زیاده که چشم چشمو نمیدینه مالک میدوئه توی ساختمون دنبال بچه با هر انفجاری چند نفر شهید میشن ساختمونم که حسابی داغون شده صورت مالک سیاه و خاکی، بین دود و آتیش و عشق شده به جامونده دنبال بچه میگرده نیست بازم چشم میگزه و بالاخره با چشمان اشکبار بچه رو پیدا میکنه اما بی جون افتاده مرتضا و مجید هم با صورت سیاه شده این صحنه رو میبینه تا زیر سفید روی تختش دراز کشیده که سربازی وارد میشه و پا میکنه قربان اطلاعاتی که از دوستان شما به دستمون رسید درست بود مخر اونا کاملا نابود شد پا میکوبه و میره و فعاد که نیمخیز شده بود دوباره دراز میکشه راعد و سرباز همراهش توی حیات خلوت خونه روی تخت نشستن. سرباز با سرنیزه در کنسروی رو باز میکنه به راعد میده در همین حین هزار پای از روی صورت سمیر رد میشه از روی چشمش عبور میکنه و فقط خودش رو کنترل میکنه که جیغ نزنه سرباز میخواد کنسرو دیگه باز کنه اما رائد قوطی کنسروشون میندازه و درست میفته روی گودا دیگه حالم به هم میخوره از هرچی کنسرفه دلم لک زده برای جوجه یه مرغ بریون خصه خوشمزه ماهی ماهی همش ماهی کشتنمون با این ماهی بسه دیگه مالک مقموم جلوی گلند کروز نشسته و با عروسک بچه بازی میکنه مهدی توفنگ به دوش بهش نزدیک میشه خوزنج آروم شده و تلفات زخممون زیاده میدونم میدونم اینجا دیگه امن نیست امنیست شو تخلیهش میکنه مالک میدونم حالت خوب نیست ما طرف خون رزا فکر میکنی خارج زنده باشه خب اید بار میام با این حاله به تو مربوز سرباز عراقی دراز کشیده که 20 سیمش به صدا در میان گوشی رو بر میان <تصفح> چلو پنج به یک سرباز میاد و رائدو که روی تخت خوابیده بیدار میکنه رائد، رائد. از قرارگاه تماس گرفتن گفتن برگردیم اونجا سمیره میشنوه سرگورد فواد در جریانه در جریانه بجام رائد بلند میشه و تفنگشو بر میداره و میره توی ساختمون سمیره از لای حسیر و از بین خاکهای روش اونا رو میبینه که رفتن حسیل رو تکون میده و یواش یواش از گودال سرشو میاره بیرون فعاد توی مغر جلوی افسری رو میگیره کی به اون دو نفر اجازه داد این همه نیرو توی منطقه هست فعاد مگه چی تو خونه هست؟ به خودم آموده این خونه برای من مهمه سمیره که حسی رو کامل کنار زده سعی میکنه از گودال بیرون بیاد جلسه یه افسران اراغی فعادم هست امروز روز آخره همه این باید در حمله شرکت کنن تانک ها از راست و قبل از غروب آفتاب مهمره باید سقوط کنه کل تانک های ما به رود کارون میرسن فعاد به فکر میره حرفای رائه توی راهرو رو به یاد میانه فکر کنم دنبال چیزی میگردن یعنی یعنی همون خونه که شما توش بودین نمیدونم حرفای راه توی اتاقش یه قابلمه داغ اونجا بود جوری ماشه. که انگشتم سوخت وقتی داخل خونه شدم دیدم روی دیوار و داره به خونه نگاه میکنه فعاد یهو از روی سندلی بلند میشه و میخواد جلسه رو ترک کنه کجا میری فاق برمیگردم برمیگردم برای بچه سمیره که از گودال بیرون اومده قوطی کنسرف ماهی اراقی ها رو که دور انداخته بودن و مقداری خاک گرفته رو پیدا میکنه درش رو باز میکنه و با ولک کمی کنسرف ماهی توی دهنش میذاره و از خوردنش لذت میبره دو جیپ اراقی از خیابون رد میشن مرتزا از پشت درختا بیرون میاد و بقیه بچه ها رو هدایت می سمیره کل کنسرف رو تمام کرده قوطی خالی رو میندازه حالا که کمی جون گرفته به کمک تفنگ رزا که پیششه خودشو از گودال بیرون میکشه باش خیلی درد میکنه راه و بی از خونه بیرون اومدن که به مقر خودشون عجل کن، عجل کن. وای سا. چی شده؟ سجل, سجل رایت جیباشو میگرده کیفمو توی خونه جا گذاشتم. کجا؟ کجا؟ جا. زیر جا سرم رو بود روی رو تخت رو آدا دیرمون شد اکسام مسته. توی خونه است یلا بری برو برو میام دنبالت سرواز میره و رائد به طرف خونه برمیگرده سمیره کشون کشون خودش به کتری سیاه عراقیا میرسونه به امید قطری آب اما خالیه خالیه ناامید کتری رو میندازه چشمش به چوب دستش میفته حالا سمیره به کمک چوب دستش توی آشپزخونه اومده فلاسک رو باز میکنه خالی شیر آب رو باز میکنه آب بعد سمیره توی آشپزخونه با صورتی سیاه و کثیف و خاک آلود میشینه پای کابینت و گریه می‌کنه <تصفيق> ناگهان فکری به ذهنش میرسه کابینت پایین زعفشویی رو باز میکنه کاسه زیر لوله خروجی فازلاب گذاشته شده که آب چکیده از لوله رو جمع میکنه خیلی کثیفه اما سمیره کاسه رو بر می داره. با ولع اون آب میخوره یه هم متوجه حضور رائه توی خونه میشه که به طرف حیات خلبت میره ترسیده کاسه رو میذاره سر جاشه ای وای صدای توی آشپزخونه رو رائد شنیده. سمیره سری میخواد خودش رو پشت دیوار مخفی کنه که پاش به دینی میخونه رائد سری میاد توی آشپزخونه. سمیره کنار آب گرم کن مخفی میشه. رائد تفنگ به دست میاد توی آشپسخونه آروم جلو میاد. سمیره روسریش رو سریش و جلوی دهنش میگیره که صداش در نیاد ولی رائد پیداش میکنه رزمنده های ایرانی این گروهی که حالا هشت نفرن از پشت بوم خونهی رد میشن از پله هاش پایین رضا و مهدی و مالک از خیابون عبور میکنن سلیمان میخواد که مرتزا نگهش میداره چون ماشینی اراقی میاد اونا هم دوباره حرکت میکنن سمیره چنگی به صورت رائد که میخواسته بهش دست درازی کنه میزنه رائد دستی به صورتش میکشه سمیره از ترس عقب عقب میره در حیات خلوت باز میشه و سمیره میفته توی حیات خلوت سمیره به کمک دیوار حیات خلوت وحشت زده فرار میکنه و رائد با خنده پلید به دنبالشه بار در حرکت سمیره لب باغچه زمین میخوره خودشو میکشه به طرف گودال تا و برداره به توفنگ میرسه برش میداره و به طرف رائد میگه تیر سمیره خطا میره و به شیشه میخوره. حالا راعد تفنگشو به طرف سمیره نشونه میگیره. سمیره خودشو عقب میکشه رو زمین. راعد و پایین میاره. ولی تو هیفی که بمیری سمیر خاک به طرف راعد پرت میکنه. راعد و روی تخت میذاره و به طرف سمیره میچرخه. خشو باز میکنه. سمیره از ترس داره قالب توهی میکنه و راعد میخنده که ناگهان شونه چپ راید سوراخ میشه و می آفده فعاده که به شلی کرده راید تموم میکنه و سمیر فعلا نفس راحتی میکشه به فعاد دبا میکنه فعادم به سمیره بغض سمیره میترک فعاد نفس راحتی میکشه و راحت میشه حالا فعاد جنازه رایدو میکشه میاره توی همون گودالی که سمیره بود جا به جاش میکنه و حسی رو میکشی روش داخل خونه فعاد قمقمه خودش رو به سمیره میده که روی تخت نشسته و چوب زیر بقلش بشه. سمیره هریسانه و تونتون آب میخوره فعاد که روی زمین نشسته میخواد دستی به پای سمیره بزنه که یهو سمیره پاشو میکشه نه کاری نداره چی شده؟ تو بازار یه جا گذاشتن نشنیدی؟ سمیره خیره به فعاد که به سختی آب دهانش رو فرومیده نگاه میکنه چرا؟ یه جوری نگاه میکنی؟ فعاد بلند میشه تازه فهمیده که چه اتفاقی افتاده تو سر خودش میاند ندیدم ندیدم ندیدی اما ما دیدوند. تو خیلی چیایی ندیدی فاد نه فقط منه تو بچه ندیدی که چطوری داشت دنبالت میدوید تو مادره ندیدی که چطوری زجه میزد تو آدم رو ندیدی که چهجوری داشت انجور میدادن تو تیکای تنش رو در دیوار ندیدی تو چی دیدی؟ بعضی هاشون همزگونای خودت بودن تو اونا رو ندیدی دیدی؟ تو هیچی ندیدی فات هیچی ناراحت به طرف سمیره میره دستشو دراز میکنه دست به ما نزن تو آدم نیستی لا, تخص. لا تخص. تخص. تو آدم نیستی تو آدم نیستی همتون کثافتین رفته که با نانو بابات بیه این سمیره بدبخت ها دیدم دیدم چجوری اومدی دیدم ما اومدند دی همه بچه رو بین نانو بابا کردی و این همه ننو بابا رو بی بچه من میخواستم میخوام یعنی با تو زندگی کنم ما تو بیزارم بیزارم میفهمی سمیره تو هم عین همون دوستت کرده فعاد ای به سمیره میزنه سمیره درد مندانه صورتش رو میگیره فعاد دورتر کنار پنجره میشینه و به دیوار تکیه میده قصبی دستمال گردنش رو برمیداره نگاهش به سمیره میفته که هنوز درد میکشه ببخش تو دوست داشتی؟ ما معلم دوست داشتم فاده که فکر میکردم آدمه او آدم منه اینجاست لباسات نگاه تو مال من باش من لباسا رو آتش میزنم تا این میتونه خود تاعتیش بزن من به خاطر تو آدم کشتم هه و آدم بوده همینا که هر روز هزار تا هزار تا تو این شهر رو زمین می‌ریزانن این گل پرپر می‌شن آدم نیستن ها حق داره به دار این شهر مال ماست شهر اجداد ماست ممکن است هزار نفر کشته بشه هیچ بین سمیرش بین دایر چی ای هزار تا پرپر میکنن؟ اینجا شهر خدان این همه شهرای دنیا مال مردمیه که توش زندگی میکنن ماسما خودشون میگن مالکیان ماسما خود مردم شهر میگن مالکیان مال اخوی مال مال مال مال بوزل که تو باغچه خانه تو دفن گردو رفته مال اونه؟ رزا بر می گرده باز باز بر. بر. بر. بر می گرده صدای را از سوی حیات خلوت شده ده. فواد سریع توفنگش بر داره بله رزا برگشته و همراه هفت رزمنده دیگه تاشون از فلای حیات خلوت پایین میان. مجید رو به دیوار به دیدبانی میمونه و سلیمان روی پشت بوم می داره رزا لبه باغچه میاد. امیرم پشت سرش اونجا خب فعاد آماده مبارزه توفنگ به دست از پشت پرده اتاق پذیرایی خونه نگاه میکنه و اونا رو توی حیات میبینی خودش رو اقام میکشه رزا پای گوداردزان می میزنه سمیره سمیره جوابی نیست نگران میشه تجین چیل رضا رزا گفتم میگن آخه بیتو احسارت میگیرم. اما قول میدم زنده بمانه اگر با من نیای والله کل هم کشته میشن فاد میاد توی اتاق سمیره ایستاده همشاللهله؟ رزمندها توی حیات خروت صدای سمیره رو شنیدن رضا بلند میشه میدوی طرف خونه مرتزا میگیردش و میکشدش کنار فعاد برافاصله به همون جایی که رضا بود شلیک میکنه و خودش خودشو کنار میکشه حالا مرتزا به داخل خونه شلیک میکنه جایی که فعاد ایستاده بود و رفته تیراندازی مرتزا و فعاد ادامه داره یعنی تو دست کسافت بشین سر نه سمیره حبی یعنی مال منه یعنی حشق منه اما ولی بیای جلوم می رضا تو فعاد به طرف سمیره نشونه میره نیزنم می سمیره را میافته فعاد که بر سر دوراهیه میخواد نگهش داره اما سمیره به طرف در میره بروب. اما سمیره سازنان به طرف در میره دم در سمیره میایسته نگاهی به فعاد میکنه فعادم توفنگ به دست از پشت دیوار بیرون میاد و به سمیره خیره میشه نه دلش میخواد سمیره بره نه دلش میاد بهش شلیک کنه انگشتش روی ماشه است، اما نمیتونه شلیک کنه آب دهانشو به زور پایین میده سمیره هم دلو به دریا میزنه درو باز میکنه و بیرون میره فو آدم انگشتشو از روی ماشه بر میداره <تصفح> به محض خروج سمیروه رضا اونو میکشه کنار و امیر به داخل خونه تیر میکنه تیر میخوره به دست چپ فعاد اما خودشو کنار میکشه سمیره توی حیات خلوت روی زمین افتاده و رضا بارسه شد از خونه خارج میشه و به طرف بیسیمچی میره که داره صحبت میکنه بده به من اون بیسیمو روشی می رو میدونه بیاید عجله کنید روشی رو میده و میره سمت تانک سلیمان از روی پشت بوم میکنه و به بقیه پیوسته مدام با دست مجروح شلیک می کنه چند سرواز عراقی از تونل پایین می فرن و به طرف خودی. سلیمان که هنوز تنهاست سعی می کنه با رگبار از سوراخ های هرره مانع پیشروی آن بشه. دو تا رو می زنه. واچ می کنه. حالا مجید به کمک سلیمان اومد. آزیاد آزیاد رضا یکی دو تاشونو خودم بوگوندم. مرتضی آقا من چرا نمیگیری سور خوبه تو خودت خوبی؟ آه خوبی؟ حالا مهدی هم لب هریه پشت بوم اومده از سوراخ‌های بین آجدا شلیک کنه به طرف عراقیا. یه تانک به خونه نزدیک میشه. سربازای روی تانک سریع پایین میپرن. نزدیک نزدیکشین نزدیک خونه رو محافظت کنین، کنین. سربازا پشت خونه میرن. نمی‌دونیم چیکار می‌کنیم. تا به خداش میارم شاید این عراقی، اینکه میگه برای خدا، آقا مرتضی، آقا مرتضی واسه بابنم. خوبه. مرتضی میاد توی حیاط قلعه. خوبه. خوبه. ما خونی وی پدریختو خو فرار کرد رضا به همراه بقیه از پلای حیات خلوت بالا میرن به پشت بون. امیر که پیش سمیر مورس درگیری بچا با عراقی از پشت بون به پایین ادامه داد رضا و بقیه به مسجد صله ما میپوند سالیم والا وقتشو کنیس رضا سمیره معلمه میدونه داغبار بلویس پنج دقیقه فرصت داری تو سمیره داری ما به تو ایتو میره داریم توفنگشو آماده میکنه. اگر تسلیم شدی زنده می مونی وله دو دقیقه فرصت داری مهندس مهدی شیشکی می بنده بقیه چپ چپ نگاش می کنه بچه عوض می خواهد ما رو امود رعوفم بود برای بیرون رفتیم از این وضعیت فقط یه راه داریم راه کشو بیده خدا خیره ازده تا هم فرق کنیم بیریم هوا اونشو من میگم فقط الان مشکل اون سرعته با وضعیت که خوهر تو داره سرعتمون خیلی کم میشه پماه درتون خوردم مالک بگم فعاد به سربازاش اشاره میکنه و اونها آروم سمت خونه میرن به گروه دیگه هم اشاره میکنه و اونها آروم به طرف خونه میر خودش پشت گاری شکسته پناه گرفته گرفتن تفنگ با دست مجروحش براش خیلی سخت شده مالک آر به دست میاد توی حیات خونه و پشت در میایسته بسم الله رو آماده میکنه مرتضی هم گلوله به دست میاره میشیش آمادهای با سلیمان با قران کنه الله الله محمد علی و بکنه الله بزن. مالک قرآن رو میگیره و میبوسه. بطلش نکن بزن با شلی که اولین گلوله آرپیجی در خونه کنده میشه و یکی دوتا تا اراقی از اثر راه کنام می مالک میپره وسط کوچه میخواد به اراقی ها شلی کنه طرف دیگر رو میبینه هم تانک هست و هم اراقی های بیشتر همون طرف انتخاب میکنه و با آرپیجی مالک میدوه توی خونه پشت سرش مرتضا مهدی بیرون میاد و که به طرف اراقی میندازه یه نارنجک دیگه اراقی ها غافل شده مرتزا و مهدی خط و درست میکنن تا بقیه بیرون بیان امیر و مجید و سلیمان جلو هن رعوف سمیره رو که روی یک تکه تخت پاره بذاشتن روی دوشش هم میکنه سمیره خودش رو سفت گرفته تا نگفته رضا پشت سر مدره. مالک کیف هاوی گلوله‌های آرپیجیای سرباز اراقی رو برمیده. امیر هم خط و آتش درست کرده رعوف با احتیاط ولی با سرعت از خونه بیرون میاد. که پناه گرفته بود از پشت گاری شکسته بیرون میاد. سمیر دستش رو روی پوشش گذاشت. طاقت این همه سر و صدا خودش رو به بی سیمشون می‌رسونه. رعوف و بچه های دیگه از خیابون رد میشن. وارد خیابون دیگه‌ای میشن که با پنج عراقی روبرو میشن. با دیدن اونها اراقیا شلیک می‌کنن. چوا کمی عقب میکشند و سمیره رو دور میکنند. مهدی و مرتزا نارنجک پرتاب میکنند و امیر به طرف اونها تیراندازی میکنه. سرواز سربازان مرده رو برد. رعوف که سمیره روی تخت پاره روی گوشش جلو و بقیه پشت سرش. الان اینکه می‌سوزم، از دیگه در حال رقصدن هستند که صدای تانک می‌شده. پناه می گیرن مرتضو کاملا می‌خواهدن. تانک نزدیک میشه. بچه‌ها بوشی می از انتهای خیابون یه تانک دیگر رو می بینن برگردم، برگردم. دست از این ترسیدیم چطوره؟ نیست. دست دو تانک به طرف اونا میاد و بچه ها اون وسط گرفتن از هر دو طرف تیراندازی میکنن بچه ها راه ای پیدا میکنن و از وسط اون محلکه فرار میکنن به یک کانال میرسن که سریع همشون توی کانال میشینن و بعد دراز میکشن که دشمن اونا رو نبیه ای آله ببین میتونیم بیستی مورا به مالک مشغول بیسیم میشه و رضا تکم و روی صورت خواهرش میگیره که آفتاب توی صورتش نخوره تانک های اراقی به همراه نیروهای پیاده به دنبال بچه های ایرانی هستن مانا مالک مالک شوهر خواهر ابراهیم های مالک اجاق میشنستی سی. ها نزدیک شدن نیروها میپرند باید بوشکر بود تو جاره صفا نتیه خونه برای اینا گیر افتادیم میره زنگیه شدی می‌شه مادر یه عراقی بیشتر شدن. فؤاد هم با اون هست. کی چی؟ ما گوشی 20 میگیره می‌گیره. می‌گهی ما قبلش نمی‌کونیم تا اون برای شد به شرطی که از این مخمصه بیرون. مرتضی گوشی رو پرت می‌کنه و مانک بعد. مانک کاکا. آمار، ترا داره میان به موسیسر پنجاتون به ابران بدگاه میفهمی خو؟ ابران پیشته؟ ببین به ابران بگو که منم قاسم خوارش تلاع بدم. کلیم دوستش داشتم. فقط نم قاسم علاوه مرد و جاهکور بود. همین او حلال میگردد. آقای من اتکار مالک پیش مهندس مهدی کوش از مالک میگیرد. سلوانی باشه میآتی از. تون اراهی از روی یک لند کروز هلال احمر رد میشه. شکتارم می نفعه از این قاعد زنده بیرون بیایم بود مادرم بگیم که حال رو نمارد. چون راضی نبود که بیام همینچه حرفشو گوش کردم جز این یه بار اون همه کاری باسه بچه یه که یه دونشون کرد من حسرتی هیچی ندارم الا یه چیز اونم داشتم این چند رفت دارم. اینجا هیچی هی از من نپرسید که تو چی داری و چی چقدر طول داری های کی دوستم داشت به خاطر مجید که هنوز عینک دودی به چشم داره تشنه دراز کشیده پیشروی تانک ها ادامه داره سلیمان قم قمش رو میده به مجید و گوشه از میدون الو آید نورانی الو آید نورانی ما سلیمونو میشنفه افهم فؤاد نه, نه. این نیست سابکو بگو بیس گاپم ککمو دفتریش نداره ما یکی یه خرده دیگ اون فرمون که ببره بده دست زنه شششم مشخصم زما شوناشم فواد از جمع عراقه کمی فاصله میگیره واو ایلا سمیرت فجاه رضا این زری مالی رقم اینم چه میگه پوچی آی, ای نورانی میشه شود یکی یکی هم آی نورانی به هده او زلزلو که ما دو اومدم خورم شهر. همه کس کارم دید دیگه می خواهد که سنگ خبری سید دهی بامون که نشد راستش بخیل دستم خیلی خالی میت نبسن و یه بگویه پول فرسته نمسی آجیب و اونجا بسونی از سعی خیلی خیلی کشانگی خب به نظری کارشون می دونیم یا بتونم چیشو چیشو من از اون پروازی آدم نریم کسی داره کنه ببخار نگه یه چی میکنی بخارم خامدم به چا بخاره؟ گوشی رو پایین میاره چشمش به ماجی میاد. اخس نگاه میکنه, میکنه فلکی زده بعد باخته اخس نگاه بکنی چه نکنی چه آینه بزنی چه نزنی دت تمومه بیا بیه و بکن فلکی زده بیکی چی میگم؟ گوشی رو به ماجی میده. <تصفح> <تصفح> یه اخس آرمی بینی یه همه اینا را دیده ولی هیشکی نپرسید که چرا تنهایی بقلت هیشکی نیست نینت کو آقایت کو به من به من اگه خانوم اکبریاد دیدی بهش بگو عشق آقا امام زمانت یه عام تو اون یه خونه یه سری پچه را بجا کرد یکی شد میجی ایشالله که پیزر خوبی برات شده باشه فؤاد بیگو. پرانداولکن. امیر نگاش میکنه و گوشی رو ازش میگیره. فواد جلو را افتاده. تانکو بقیه پشت سرش. تفنگو روی گودی دست چپش نگهرش. یه کی مرتزه؟ ها؟ نه. بزن از این تاشا. انا ما امیرو. نه نه نه. آ فرمولای 2016 ما یه ننه دارم یه خوهر توشوشتن به خوهرم بگیم ککاش گفت این رضا خیلی مرده بهش بگین کوکاش به گرد پاشم نرسی. ها. رضا، ما بابت حرفایی که اون شب تو قرارگاه جلو اینا بهت گفتم گفت رضا که هنوز مقوار رو روی صورت سمیره گرفته لبخند میزنه اراقی ها جلو میان آقا نورانی ببخشی. بای شاگردم دارم تو محادثمش سعیده ما خیلی تو سر ای به خاطر خودش بودم بگین حلال ها کنه خب توکلو ها ها خب ها خب ها یا علی هماش تغصیر منه رضا فقط رفقات منو ببخشم اگه هر دومونو اینجا بزنن بسیم چی میشه حسابت کفتم بزن, بزن, بزن, بزن. می زد و سمیره تازه میفهمه که رسول رفته تا قدیه پس گردنی که به رسول زده من نداشتم والله تا آخر عمرم حسرتی که نشد نشد یا خدافزی درست رستیم هاش بکنم رو جگرم می بونم نشتم <تصح> زندگی مونت کرد سلیمان قرآنشو می بوزه دست سلوات بکرسیم الله حسن الله جان رزا کوکایی قرآنوی بروی سینه یادش بشه اون رو میمیرونده شما؟ هنوز زنده این؟ می قرآنو میبوسه به پیشونی میذاره و بعد اونو روی سینه خواهرش میذاره تا خدا نگهدارش باشه مالک و سلیمان و مهدی آرپیجی به دوش وصف خیابانوی فؤاد تا اونها رو میبینه پناه بقیه اراقیان فرار مالک و مهدی ایستاده به یک طرف و سلیمان نشسته به طرف دیگه شلیک میکنه. سه تا تانک نابود میشه. تعداد زیادی از اراقیان به درک واصل میشن. نوجوان اراقی میخواد با آرپیجی اونا رو بزنه که فعاد با لگد اونو پرت میکنه و اجازه این رو بهش نمیده. به طرف ایرانیا ها تیراندازی میکنه. بچه ها که از کانال بیرون اومدن فرار میکنن. رؤوف مثل قبل سمیدانو میبره سلیمان و مجید جلوی عراقی ها ایستاده و شلیک میکنه. تفنگ مجید گیر میکنه. پنج عراقی که روی زمین دراز کشیدن و فعاد که ایستاده به طرف مجید میزه. مجید که هنوز عینک دودی به چشم داره به زمین میافته. سلیمان برای کمک سمت مجید میاد که فعاد با نهایت خشم اون رو به رگبار میبنده. تفنگ از دست سلیمان میفته و اون هم میافته کنار مجید. هر آخرین نفس‌هاشون رو میکشه. تیراندازی و پرتاب نارنجک ادامه داره. باقی بچه‌ها فرار میکنند. بچه‌ها وارد منطقه باز شدن و میخوان وارد نخلا بشن. فعاد توی هلیکوپتری را تعقیب میکنه مهدی که متوجه هلیکوپتر شده میسته و سعی میکنه اونو مورد هدف قرار بده و یا اینکه رو بزنه. فعاد که حالا دست چپشو باانچی کرده به سروازاش دستور میده. اونو بزنید. دختره رو نزنی. مهدی که فشنگ خشابش تموم شده میخواد خشابو عوض کنه که مورد حسابت همزمان گلوله دو تک تیرانداز قرار میکنه دو تیر دیگه و مهندس مهدی روی زمین میافته فاد به سروازها دستور میده که دیگران رو تقریب کنن و اونا رو بزنند مهدی که آخرین نفساشو میکشه عکسی از امام خمینی از جیب پیرنش در میاره نگاه میکنه بچه های دیگه فرار میکنن و هلیکوپتر به دنبالشون مالک لحظه ای که با آپیج هلیکوپتر رو بزنه نمیشه پشت سر بقیه می که از پشت مورد اصابت گلوله اراقی قرار میگیره و میافته فوات خوشحاله اما نگران رضا رزا که مالک رو میبینه عصبانی به طرف هلیکوپتر شلیک میکنه اما اثری نداره بالای سر مالک میاد مالک شهید شده رزا آرپیجی ور میداره و به طرف بقیه میره فوات از سوی هلیکوپتر نگاه میکنه رعوف رو میبینه که با عجله سمیده رو میبره نشونه میگیره و تیری به شکم رعوف میزنه تعادل رعوف به هم میخوره تیریم به پاش میزنه بچه ها نگران میشن فعاد از عملکرد خودش راضیه. فعاد به خلبان هلیکوپتر دستور کاهش ارتفاع رو میده فعاد با دقت لابلای نخلا دنبال سمیره و بقیه ایرانی میگرده تک اندازای اراقی هم با دوربین تفنگاشون به دقت نگاه میکنه رعوف دیگه طاقت رفتن نداره و میافت رزا به امیر کمک میکنه که تخته رو از پشت رعوف بردارن رعوف بیحال روی زمین آقا رعوف. آقا رو رزا میره آقا. ملیکوپتر از روی رودخونه رد میشه دوری میزنه نخلستان و کامل زیر نظر گرفتن رزا آقا مرتزا رو پیدا میکنه اما تیری به سینش خورده و پای نخلی افتاده و سرش رو به تنه درخت تکیه داده خوب می‌تونم. خب سیز. اشکالی نداره. حتما. یارو شو. نه نه. واسه گردنم نمیگه. گر. صحیح دلم راست کنه و سیاه کنه. اما نشد. خیلی سخت. تو باید همیشه قوی باشی. نباید بشکنی خیلی سخت خودمو میگه زنم بگید تابلاه نقاشیمو برای بچه هم نگه داره و به تو بچه هم داری؟ دیگه میاد بگید باباش جنگی تا اون بتونه. بچش ما رنگ دنیا رو بهتر ببینه. رزا... سر آقا مرتضی به یک طرف میفته و شهید میشه. رضا فقط سکوت میکنه. امیر در کنار سمیره که هنوز روی تخت پاره خوابیده نشسته. رضا رو میبینه که به اونا نزدیک میشه و ناتوان تفنگش رو میندازه. زانو میزنه و گریه می کنه. <تصفيق> آه برسه هم رفت رفت فقط گفت بهت بگم اگه خدا اجازه میداد، ما می رسندمش پرنده رعوف روی صورتش نشست حالا فقط رزا و امیر و سمیره موندن که در سکوت به هم نگاه مکن. صدای هلیکوپتر سکوت اونها رو به هم می رزه فعاد توی هلیکوپتره. باز به خلبان دستور می ده بارو به سرال برو پاین هلیکوپتر ارتفاع کم می کنه. نزدیک زمین میشه شه فعاد پیاده میشه و به خلبان دستور میده ده که بره هلیکوبتر مجددن ارتفاع میگیره و دور میشه و فعاد وارد نخلستان میشه شه و, می شه. و امیر میخوان سمیره رو بردارن و برن با می توانم اتونه ما جوانه. سمیره رو بلند میکنن فعاد بین نخلا دنبال سمیره و رضا و امیر میگرده حالا امیر مثل رعوف تخت پاره رو روی دوشش گرفته و سمیره رو حمل میکنه رضا هم انتهای تخت رو گرفته و کمک میکنه صدای جیپ اراقی ها رو متوقف میکنه سمیره بگیر ما انا بیا رزا؟ رزا؟ یه جیب با چهار سرداز نزدیک میشن میزن و میپرن پایین رزا از پشت درختی آرپیجی به دوش بیرون میاد جیپ اراقی ها میره روی هوا دود همه جا رو چهار عراقی هم نابود شدن سمیرا تقلا میکنه آروم قرار نداره امیر سمیره رو روی زمین میذاره در فروکش دود رزا رو میبینیم که زمین افتاده از صدای سمیره فعاد محل اختفای اونا رو پیدا میکنه میدوه امیر که حسابی خسته است سمیره رو به دوش گرفته و به سختی حرکت میکنه توفنگ امیر دست سمیر است فعاد همچنان به دنبال رسیدن عشق قدیم امیر به سختی سمیره رو حمل میکنه حالا به رودخونه میرسد. امیر زارو میزنه و میافته و تخته رو از روی دوشش زمین میذاره گونی زیر سر سمیره رو مرتب بکنه قرآنیو که روی سینه سمیره است بر میداره میبوسه و به خدا توکر میکنه قرآن سر جاش میزه و تنابو به تخته میبنده و دور گردنش بنده سه فعاد و عصبیتر از قبل میدوه اونا رو لب رودخونه دیده امیر سعی میکنه سری سمیره رو داخل آب بکشه و فرار کنن همین کارم میکنه حالا فعاد به اونا میرسه تفنگشو رو پرت میکنه و با فاصله کمی توی آب میپره فعاد به اونا میرسه ای که سمیره روی اون هست و میگیره و اجازه نمیده که جلوتر برن آه. بزنش بزنش بزنش بزنش سمیره ترسیده اما نفرت از دشمن بهش شهامت میده توفنگ و سمت فعاد نشونه میگیره شونه ی سمت راست فعاد گلوله میخوره فعاد باور نداره این یکی به قلبش فعاد بی حرکت میمونه و امیر با خیال راحت سمیره رو روی آب میکشه سمیره بیرمق به فعاد خیره میشه فعادی که دست روی جاهای اصابت گلوله گرفته و به سمیره و امیر زل زده سمیره و امیر میرن و فعاد با چشمان باز آروم آروم توی آب فرو میره و لحظاتی بعد روی آب شناور میشه سمیره و امیر رو میبینیم که در میان آبهای درخشان به مسیر خودشون ادامه میدن شنوندگان عزیز فیلم روز سوم رو با همدیگه شنیدیم این فیلم محصول سال 1385 کشور عزیزمون ایران هست که به سفارش گروه تلویزیونی شاهد تهیه شده بود این فیلم در 25 جشنواره بین مللی فیلم فجر کاندیدای دوازده جایزه بود که موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول زن و همچنین بهترین طراحی صحنه و لباس شد. امیدوارم همه هنرمندان ما در تمام عرصه ها موفق باشند. اما مثل همیشه صدا بردار این کار آقای علی حاجی نوروزی بودند. سردبیر و تهیه کننده فرشاد آزرنیا و بنده که به عنوان نویسنده و گوینده در خدمت شما بودم بهرام سرورین نژاد تا رادیو فیلمی دیگر خدا دا